سلام به شنوندگان کانال هزار افسان از این کتاب زیبا داستان خول و برادر سواددار رو تقدیمتون میکنم امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخر داستان همراه من باشید این روایت با گویش قوچانی در پایانامه تحصیلی آقای علی اسقر ارجی زرد شده است ما را به فارسی معمول برگردانده‌ایم دیوانها و خولهای قصه ها و افسانه ها عرف هستند آنچه به ایشان ظاهری خول یا دیوانه میدهد همین رفتار خلاف عادات است در مقابل این دسته اقلای قصه ها حضور دارند که رفتار حسابگرانه داشته و در عین حال تماع هستند در روایت خول و برادر سواددار برادر خول دیوانه پادشاه را می میکشد و دودمان دیو را به باد می دهد. و سرانجام با دیوانگی خود بر عقل برادر پیروز می شود و نشانه این پیروزی ازدواج با زن برادر عاقل است اما برادر عاقل کشته تمع خیش می شود و مغلوب برادر خود به نام خدا مردی بود که دو تا پسر داشت یکی از اینا باسواد بود و فکرش نسبتا خوب کار میکرد و اون یکی بی سواد و یکی هم خول بود پدرشون که مرد یه بزرگ یه ماده گاو براشون گذاشت مدتی از مرگ پدر گذشته بود که پسر خول اومد یقه برادرشو چسبید که بیا پدرمون پدرمونو تقسیم کنیم. اون یکی گفت برادر جان ما که ثروتی نداشت خوله گفت هرچی که داره تقسیم میکنی نشستن به تقسیم کردن ماده گاو به پسر خول افتاد و پوز نصیب آقل شد. چند روزی از این می گذشت و یه روز سر صبح پسر خود بلند شد و شاخ و بند گوزاله رو گرفت که ببره. برادرش پرسید کجا میری؟ گفت میرم بفروشمش. گفت پسر پسرجون یه یادگاری از پدرمونه حیف نفروشش. پسر خاله گفت میفروشم. آقله دیدین حرف تو کلش نمیره گفت ببر. پسر خول بین رادید دید یه شونه به سر روی یه دیوار نشسته و میگه هپ هپ گفت ها میخوای مادگاه رو بخری این گفت هپ هپ پسر خاله گفت دیویست آمد اون گفت هپ هپ گفت بیارم ببندم گفت هپ هپ پسر اون رو برد و توی خرابه بست گفت پولش رو بده من گفت هپ فردا بیام گفت خوب خوب خله راشو کشید و به خونه اومد بردرش پرسید ما دوگاهو چی کردی؟ گفت دیویستو هم فروخت به خوب حب خوبی گفت پولشو گرفتی؟ نه کی گفته؟ گفته فردا آقله گفت خب جوون و مک بشید خب حب خبیه هیوونه هیوون با آدم پول میده؟ گفت با. پیدرشو در میارم. ما ازش میگیرم. مگه فلش میکنم؟ به سر خول صبح بلند شد و رفت. دید شانه به سر همونجا نشسته. گفت اومدم بر پول. اون بار گفت. خله گفت. نداری؟ گفت. خپ خپ. گفت. برم فردا بیام. گفت. خپ خپ. گفت. فردا میام. نگی پس فردا بیا. گفت. خپ خاله برگشت و اومد. بردرش پرسید. گرفتی؟ گفت نه. گفته فردا. بردره گفت نه بابا. اون پول رفت. دیگه پول به تو نمیده خاله شب و گذروند و صبح بازم بلند شد و رفت پیش شونه سر. سلام کرد و گفت. پول جور کردی؟ گفت هوب هوب کوپا با بدی. خاله سه خاله هرچی گفت شونه به سر خوب خوب کرد. خاله ناراحت شد که دو روز بولش رو نمیده. سنگی برداشت که اونو بزنه شونه به سر پرید و رفت توی سراخ. جا جاپاشو محکم کرد تا خودشو به سوراخ برسونه. هر جوری بود خودشو بالا کشید و به هم زد و خراب کرد. بعدی دید اوه هفت و هفت دخوم ردیف پر از جواهرات اونجاست. گفت مونه پدرت خراب تو این همه پول داری و من ازیت میکنی؟ میگی برو فردا بیا بعد به اندازه دیویست همه و گفت ببین این دیویست همه بیشتر من نداشتم راشو کشید و اومد بردرش گفت گرفتی؟ بله کو اینها ها نگاه کردید همش جواهرات گفت کجا بودی که ببینی برادر جانی؟ این خونه خراب هفت خون پول داره برادر آقل تا این حرف شنید شروع کرد به پذیرایی از برادر خلو چرب زبانی کردن. بعد گفت میشه بریم خونه یومشونه به سر و به نشون بدی؟ خلو گفت آره میشه برچی نشه. بردر سواددار به زنش گفت یک گندم برای ما برشته کن. زنش کمی گندم برشته کرد و رفته. هوا هم برادر آقل گندوم برشته رو توی جیبش ریخت و خلیه از جلو و اونم از پشت سرش حرکت کردن. برادر آقل مشت مشت گندوم رو به هوا میریخت و میگفت برادر از هوا گندوم برشته میباره. خلیه گفت آره برادر جون امروز از هوا گندوم برشته میباره. خم میشد و گندوم رو از روی زمین بر میداشت و میخورد. رفتن تا رسیدن اونجا. سوراخ رو نشون برادرش داد و گفت این همون سوراخه برگشتن یکی دو شب گذشت و برادر سواددار نقشه که جیده به زنش گفت زن برنامه دارم که میخوام برم و این پوله رو بردارم زنش گفت میفهمم خوب نیست گفت نه میرم و میام یه شب برادر سواددار جوالی رو برداشت و رفت سراخه سراخه هفتاد خم و ریخ توی اونو به خونه اومد و یه جا قایم کرد. صبح، جارچیا بین شهر جار زدن که هرکی ی شاهد زده انعام داره. تا برادر خولینو شنید رفت و گفت: من دزیدم گفت کی دوزیدی؟ گفت همون که از هوا گندم برشته میبارید. این را دیوانه میگفتند دیگر راستم میگفتند به خله گفتن، آخه پدر سوخته مگه از هوام گندم برشته میباره؟ خله رو گرفتن و یه شکم سیر کتکش زدن و ولش کردن. خلو هم قسم خورد که اگه پادشاه رو نکشتم؟ روزی از روزا رفت و دوروبر خونه پادشاه و یواشکی از روی دیوار پرید تو حیات. بوری توی تنور قایم شد. یکم از شب گذشته بود، که خله از تنور بیرون اومد و رفت به اتاق پادشاه دید یه چرا کنار این دستش و یه چرا کنار اون یکی دستشه یکی زیر پاش و یکی بالای سرش روشنه و سلطان با تشریفات زیادی خوابیده خنجرش کشید و سر پادشاه رو برید و در رفت وقتی وارد خونه شد بردرش دید و دست و بال خله خونی کله پادشاه رو هم گرفته زیر بغلش برده. گفت این چه کاری بود تو کردی؟ گفت پدر سخت ها منو زدن برای همین این کارو کردم. برادر عاقل اونو به زبان گرفت و گفت بیا ببر بنداز اونجا بین آخور. دست و پاتم بشور. چای ماییام بخور که خیلی خسته ای. خله کله پادشاه رو برد و بین آخور رو انداخت. دستوپاشو شست و چای مایش هم خود بر در آغل جای اونو انداخت و گفت بگی بخواب خسته ای وقتی خوله خوابید آقل رفت و کله شاه رو برداشت و جای دف کرد بعد یه بزوکشت و کلش رو توی آخر جای کله شاه گذاشت و برگشت خوله بیدار شد آقل اونو ترسوند و گفت برادر جان تو رفتی شا رو کشتی. صبح میان و یقت رو میگیرن. میبرن اعدام میکنن. میکشنت گفت. حالا چی کار کنن؟ گفت بیا ببرم تو چا بندازیم. بلند شدن و کله بوز و گذاشتن توی توبره و انداختن توی چا و دهنه چاه رو گرفتن و بریشتن. صبح که شد فلوله افتاد که کلی رو کندن. کلی شا رو کندن. باز جارچی اومد تو شهر که هر که هرکس کلگی شاه رو کنده اونقدر اینقدر انام داره. خله دوید جلو گفت من کندم گفتن کجاست؟ انداختم تو چه. خله رو برداشتن و آبوردن سر چه. تنابی به کمرش بستند و خله رفت توی چه. وقتی میخواست کله رو برداره دید شاخ داره. از پایین گفت پادشاه شما بلیه یا نابلیه؟ نا گفتن بلی چیه نابلی چیه بیار بالا خله که کله رو آبود بالا دیدن کله گه بزه گفتن بابا این که خودش دیوونه است هیچ پدرش هم است خوده رو گرفتن و تا جایی که میخورد زدنش بعد بلش کردن خله اومد خونه برادر آقل با خودش فکر کرد که جواهرات رو من قایم کردم برادرم که رفته کله شاه رو کنده خب چند وقتی از این شهر برم؟ مدتی این بر و اون بر توی این قله و اون دعا کنم تا ببینم عاقبت چی میشه. کتاب داشت و برداشت از زنش خدا کرد و در رفت. پشت به شهر رو رو به بیابان رفت. رفت و رفت تا به یک دیو برخورد کرد. سلام کرد و دیو جواب سلامش رو داد و پرسید تو چه کاره ای؟ گفت خب ملام. گفت کجا میری؟ گفت, میرم به این قلع ماله ها مکتبی باز کنم. به بچه ها خوندن یاد بدم. دیو گفت بیا با من بریم. من تا دختر دارم. اینا رو ثبت دار کن. هرچی هم خواستی به تو میدم. را افتادند و دیو اونو بود به یه جای خیلی خوب. خونه بزرگی بود. دیو دختراشو رو زد و هر تا رو به اون سپرد و خودش رفت. برادر آقل یه مکتب باز کرد و به بچه ها درس میداد. مدتی گذشت که برادر خول به زن بردرش گفت سنده داشت. مردم یه مرگشون رو گم می کنن میرن دنبالش. وقت من داداشم گم شده. دنبالش نرم. من میرم دنبال داداشم. بلند شد و دو تا نون توی کوله پشتیش گذاشت و پشت به شهر رو به بیابون راه افتاد. از غذای روزگار اونم با دیو برخور کرد. پس از سلام و جواب سلام دیو گفت تو چه کاره‌ای؟ خول گفت من چوپانم. دیو گفت کار چوپانی رو خوب بلدی؟ گفت بله. دیو گفت بیا بریم من یه گله گوسفند دارم. راه افتادن و وقتی از حیات خانه دیو رد می شدند خول نگاه کرد و دید و برادرش اونجاست. گفت برادر تو هم اینجایی؟ ای؟ آقل گفت آره جا و بشی اینجا نمیذاری راحت باشن؟ خلاص دیو یک گل گوسفند به دست خلص پرد رفت. برادر به خله گفت برادر جان این گوزفند ها مال دیوه. حواست باشه که گرگونا رو نخوره. اگه توی بیابون به گرگ برخورد کردی این سنگو که دیدی پشت اجاق میذارن بردار به طرفش پرت کن تا فرار کنه. خوب اونو نصیحت کرد. خله گوسفندارو رو برداشت و بود به بیاغون که به چرونه. بعد از ظهر گوزفنده رو جمع کرد تا به استخر ببره آب بخورند. بین را به یه جوی آب بزرگی رسیدن. گوزفنده نمیتونستن از اون ردشند. هرچی با چوب اونا رو میزد فایده نداشت. نگاهی به اونا کرد و پیش خودش فکر کرد اها اینا؟ چارق به پاشونه. نمیتونن رد بشن. چاغوشو درآورد و یکی یکی سومه های رو برید. گسفندار رو شل و پر کرد. هی hey, از این ور به اون میافتادن. خلاصه یکی یکی گسفندار رو پرت کرد اون طرف جون. همین لحظه گرگی هم پیدا شد. خله فرار کرد و رفت پیش برادرش. برادر گرگ اومده؟ اون سنگو بده گورگو بزنم. گفت جب اون مرگ بشی مگه سنگ تو بیابون نبود که دنبال این سنگ اومدی. حالا بیا به این بچه ها درس بده تا من برم ببینم چی شده. آقله رفت ببینه چی شده. خوله از دخترای دیپورسید. پرسید. چند وقت بردر من به شما درس میده؟ گفتن چلس. گفت سراتون همیشه میشوره یا نه؟ گفتن نه. خاله فاری رفت و یه دیگه بزرگ آب روی اجاق گذاشت. وقتی آب خوب جوشید، دخترا رو دوتا دوتا گرفت و کله کرد تو آب جوش. بعد هم دوتا دوتا گذاشتشون یه طرف. بعد زیر گلوی هر کدوم یه شاخه دوسر دو سر گذاشت. بچه دیوها مچاله می و چشمشون به آسمون برمیگشت اون طرف برادر آگل رفت و دید خلی همه گوزفند ها رو شل کرد. تعدادی هم گرگ خطشون کرده. اومد پیشه برادرشو گفت چی کار کردی؟ هیچی. تو سی روز اینا رو درس میدادی دادی؟ سراشون رو نشسته بودن. من شستم. ببین چی می خندن؟ برادر نگاه کردی دید بچه دیوار رو کشته. ای جوون و مرک بشی تو که اینا رو کشتی بیا زود از اینجا فرار کنی. الان که دیو برسه پدرمونو در بیاره رفتند و چند تا نون لایه بخچه گذاشتن و حرار کردن خیلی شده بودن که دیدن یه سنگ آسیاب بین راه افتاده خله گفت برد برده این سرتیشه ننه است که اینجا افتاده آقاله گفت جا مرگ بشی این سنگ آسیابه سرتیشه ننه کجا بود؟ گفت نه سرتیشه ننه است خم شد و دست کرد تو سنگ و با توکل به خدا اون رو انداخ روی و دبو رو که رفتیم. آقله هر کاری کرد که اون سنگو بندازه جواب شنید که نه سرتیشه این که اینجا افتاده. مدتی راه رفتن تا رسیدن به یه بیابون. اونجا چششون افتاد به گی درخت بزرگ که دیویست نفر میتونستن زیر سایش بشینن. آقله گفت بریم بین این شاخه های بالایی این درخت قایم شیم. اگه دیو اومد ما رو نبینه. اینو گفت و فوری بالای درخت رد. خلا هم با هر بدبختی که بود هنق و هنق سنگ و آسیاب و با خودش برد بالا. یه مدت دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت که گذشت یه کاروان زیر درخت استراحت کردن. کار مانا باراشون خالی کردن و هر کس به هر کاری که بود مشغول شد. یکی چایی دم میکرد، یکی فتیر درست میکرد، یکی برنج بار گذاشت، اون یکی هم کباب درست میکرد. دو سه ساعتی که گذشت، خله یه دفعه گفت برادر. گفت بله، گفت من شونم درد میکنه، سرتیشه ننه رو میندزم، گفت مرگ مرک اینا همه آدم هن. اونا رو میندازی همه رو میکشی. نه یه جایی تکیه بده. گفت نه من میندازم. سنگورها و رها کرد و سنگ هوهوکشان پایین اومد. مردم نگاه کردن دیدن یه سنگ آسیاب از اون بالا میاد. همه گذاشتن و فرار کردن. بردر را پایین اومدن و خل رفت گشت و گشت دید یه کماجی روی آتیشه. یه شمشیر لکنتی هم پیدا کرد. و با اون شروع کرد به باد زدن آتش تا کماج به پذل. یه وقت سر کله دیب از دور پیدا شد. آقله گفت برادر. گفت بله گفت دیم اومد. پدرم اونو در میاره. اگه دیدی منظورم به اون نمیرسه فوری بیا کمکم. گفت من ایچ کار ندارم. چیکار دارم. ولی هرکس پاش به کماج من بخوره پدرشو در میاره دیو اومد و رسید به برادر سواددار و گفت این نمک بهرم دخترای منو کشتی؟ گوزفندامو اونجوری کردی؟ پریدن به همدیگه از این را و با اون را از اون را و به این را برادر سواددار که حریف دیو نبود نخشه کشید چیکار کنه؟ پیش خودش گفت خدایا پای دیو به کماج این بخوره تا بلند به من کمک کنه در کشمکش بودند که تک پای دیو به کماچ خورد. اون رو پخش و پلا کرد. خله شمشیر رو کشید و افتاد به جون دیو. ده بزن. چارتاپای تا پای دیو رو قطع کرد و دیو افتاد و مو. برادرا از شر اون راحت شدند. خله نشست و کماچش خورد. و آگله هم برنجارو خورد. بعد آگله شروع کرد به جمع کردن اسباب و اساسیه های خوب. قوله هم گشت و گشت و یه پالون خر پیدا کرد. اون رو برداشت. آقله گفت بردر جان، پالون خر به چه دردت میخوره؟ بیا از این اساسه خوب بردار. قوله گفت نه، من همین پالون خراب رو میدارم. حرکت کردن و رسیدن به یه قلعه خراب. شب شد و برفم گرفت. آقله کمی زمین رو گود کرد و رفت توی اون. لباس ها رو هم ریخ روی خودش. خله بیخ دیوار یک گودالی کند و رفت توی اون پالون هم گذاشت سر گودال و خیلی راحت خوابید. نصفه های شب آقله دید الانه که سرمون رو از بین ببره. اومد و خله رو پیدا کرد و گفت من رو هم بده که سرما دست و پامو از بین برده. برداشت گفت اصلا راه نمیده. موقع که میگفتم پالرنه خربردار تو میرفتی اساسا خوب برمیداشتی. آقل هر کاری کرد این راش نداد. ای تو پشیمون برگشت و رفت سر جای خودش. سوب برادر دیوانه از حلقه گودا بیرون اومد. لباسای روی برادرش رو کنار زد و دید. برادرش انگار خیلی وقته که مرده. خلاسه ناراحت از این قلعه به اون قلعه یک الاغ پیدا کرد. جنازه یه برادرش رو بار اولاق کرد و به شهر خودشون را افتاد در بین راه رسیدن به جایی تابستان بود و مردم مشغول درو کردن و خرمنکوبی بودن خله جوری برادرش رو خر که هر کس میدید خیال می کرد سواری می کنه. بعد خر و کرد و خودشم رفت پاشت دیواری نشست خرمنکوبا گفتند بابا رو از روی ها دور کن ها رو می‌خورن چند بار گفتند دیدن به روی خودش نمیاره پسر جوانی شاخو کشید و زد به پشت مرد علاغ سوار اون رو از بالای خر انداخ پایین خله از پشت دیوار بلند شد و با دست به سر خودش کوبید که ای وای برادرمو کشتی برادرمو کشتی کسایی که خرمن می‌کوبیدن جمع شدن و گفتن حالا کاریه که شده بگو خونه پول برادرش چقدره؟ تا ما بدیم حالا اون زمان هر چقدر پول خونه برادر بودش بوده 100 تومن یا 200 تومن خل گرفت و برادرشو بار الها کرد و رو به شهر خودش اومد اومد تا رسید اونجا به سر و کله خودش زد گفت ای زندو داش برادرم مرده برادرم مرده و نالهکنان از در حیات وارد شد مردم جمع شدن و دیدند بله برادر مرده اون رو دفت کردند. چند روزی گذشت و چهلوم برادره هم رد شد. خول زن برادرشو برای خودش عقد کرد و با ثروتی که به دست آورده بود زندگی می کرد. اونها رسیدند به مرادشون و ما هم به خدمت شما. خول و برادر سواد افسانه های موضوع پایان نامه تحصیلی آقای علی اصغر ارجی سال 1375 راوی پایان نامه آقای ابراهیم نظری قوچان عتیق 67 ساله ساکن قوچان گردآورنده آقای موسر الرضا نظری سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها